قرصاتون رو نخوردینا پجمان میگفت هر شب بعد دواتون رو سر وقت بخورین کجاست بگیم من برم براتون بیارم دیگه ما فقط باید دعا کنیم کاری که از دستمون بر نمیاد سری من به عهدی بدی نکرده حقش نیستش که بنایی سرش بیاد اتفاقی براش نیفتاده من مطمئنم خدا کنه این باشه با هم خسته شدی بابا امروز حسابی حراکت در اومد بیا برو خونت استراحت کن آخه شما تنهایی من دلم نمیاد. نگران من نماشو بابا پس هر وقت هر ساعتی براتون کاری پیش اومد یا از پژمان خبری شد به من زنگ بزنید من بیدارم خودمون میرسوند تو هم اگر خبری گرفتی منو بیخبر نزد خدا حافظت چشم صبح هم اول وقت میرم آگاهی ببینم به کجا رسیدن. با اجازه سلام بابا جان. قربونت برم تو خوبی؟ الحمدلله، شکر خدا. تو چطوری؟ بابا میگم نیستی ببینی دخترم چه خانوم قشنگی شده خدا ببشه قدمش مبارک باشه مگه قرار نبود تو دستگاه باشه بابا جم آره دیگه تو دستگاه ولی میارم من به شیر میدم دوباره برش میگن دران تو دستگاه نه دکتر گفته برای احتیاط بعد دو روز بمونیم باید مرخص میشیم بسلامتی انشالله میگم پجمان کجاست اه اه رفته مای ما سرا هرچوی زمزه جواب نمیده خب لابد ح حتما... داشتر رانندگی میکرده موقع رانندگی جواب تلفن رو نمیده بابا بابا بهش بگو خیلی مسقره یه دون اکس از دیشب بر من نفرستاده خب وقت نکرده بابا حالا انشالله قصد میفرسته بابا تعریف کنم ببینم دیشب چی شد همه چی خوب بود بعد نبود جات خالی بود دختاره هم بابا میگم اصل یک جیغ جیغوی شده زور بیمارستان گرفت و دوسترش اسی چه این اصل؟ آره دیگه پیشمان اینقدر گفت اصل دایی اصل دایی منو مهران گفتیم اسمشو چی بذاریم میذاریم اصل بح, بح بح مبارک باشه مبارک باشه حالا دیگه استراحت کن بابا قربونت برم مراقب خودت باش بابا جون کای نداری خدا بس پدرش زنده است کدام می‌داری ببخشید به شما وقتی جلو بیمارستان پیداش کردن سطح حوش خیلی پایین بود دکتر حال حالش چطوره منو میشناسه اصلا حرف میزنه دکتر من میخوام ببینمش بله حتما خانم رزایی پدرشون اصلا راه همهیشون کنید ببینمش برده به منم میخوام دارم تشریف ساشته دیگه یکی خانم نمزهتون تو گناست خانم تو با دستگاه داره نفس میکشه من این چیزها رو نمتونستم جلو پدرشون واضح بگم آه چه بلایی ای سرشون هده. ما اطلاع دقیق نداریم که چه اتفاقی برشون افتاده فقط میرینیم که ضربه محکمی به سرشون خورده کمک های اولیه انجام شده اه... اووردنش تو کما نبود ولی دمدمای صبح متاسفانه و شیرشه از دستاد خب شما از این مرباره زیاد داشتین دیگه که بعد دوباره برگشتن. درسته؟ با خداست بعد دید باید سب کرد یعنی چی؟ یعنی شما نمیخوان کاری انجام بزینی؟ خانم چه حرفی میزنید ما تمام تلاشمونو میکنه خیلی من خیلی سرت آوردن بابا چرا ازت قافل شده این چه خاکی بود که به شد پشمان بابا جا. منیت امروز میخوای؟ من از دفتر ماشین وید. باش. سلام. سلام. برگشتیم لازم بود شده؟ نه ترجیح دادم سر خونه زندگی باشم پول منو کی میدی؟ باز شروع کردی؟ تموم نشده بود الان ندارم ولی من الان میخوام تو اومدی با اصفرابانو من بوزی کنی؟ اومدم پولمو بگیرم او چک میدم چک نه نقد میخوام نادر می دن ریس کی رونمات توی ماشین منتظرم سلام, سلام. خب این که هسته طبیعیه به حال شروعه کارت من شرعه تمام بهت گفتم توام هم میخوای بررسی کن ببین چه جوریه هایی اینجا چی میخواد؟ به زور اومده زور اقرامی چکار داره؟ پول بذارم تونونه یه گرفتی به من خبر بوده یه شماره ش هم بفرست برچهوز با دغ میکندافرست. متی که به چهطور حتتیماده اینجا؟ کی بهش رو داده ها؟ کسی بهش رو نداده خودش پر روی از تو چند بار من زنگ ز جواب رو چ باش دادین دی وقتی میاد تو دیمدم تو پرتش کنم بیرون که باید می کردی تممثل که مشکلات مالی هم حل نشده من نمیدوننم توی شرکت برای چه اتفاقی بیفته و چی پول بیاره؟ برای همین من برنامه رو درست نمیکنم. درستی که یاد رففت مدیام شرکت منم. و تا حسون نیست گذاشتم توی این کار. اگه لازم باشه و پول کم بیارم از کامیار که سالی از 100 و میگیرم نمیگیرم اما توی این کار موفق باشم میفهمی آقا من اجازه نمیدم همسر سابقه نامزنم پشت شرکت من بذاره. اینجا شرکت منم حسم من شریکم.وااند سمت پول بیا. رامنجان توی قرارداد نوشته. پول از شما برنامه از من من به اندازه سهمم سود برمیدارم به اضافه حقوق ماهیانه کجای قرار نوشته من باید پول بیارم ها؟ جایشم در نوشه که من پول از کجا باید تهیه کنم من دلم بخواد قرض می کنم، دلم بخواد وام می گیرم. مهمیده که چرخ اینجا به چرخ. آقا به چه قیمتی؟ به هر قیمتی من به هر قیمتی کار نمی کنم اگر تونستیم با سال اینجا تو هم بام به نتیجه بریسیم که ایچی اگه نه باقیش با خودت جور کنی به قیمتی؟ تو مسکی که یاده جلسه من قهر بارش ازدواج کنم جامعه از اینکه منو یاد رفته؟ کدوم شرایط؟ نیدا برگشت مهریاشم نذاشته اجرا. دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که اینجا باید ما این سه اونیم قصد بدیم. حقوق بچه ها آرش رو باید بدیم. الو نیست کی به پول میرسیم. دیگه نمیخوام اسم کامیار بشتوان. آرش. نمیجا. کجا میری؟ تازه نشد چرا آقا پشمانو تو بیمارستان پیدا کردن بیمارستان چرا زدنش بردن به لش کردن ای بای شده که این کاری کرده نه ولی همه به سامان مشکوکن بکن نه جواب تلفن میده نه آدرس درست سابق میده الان آقا پشمان حالش خوبه دو کماست سلام سلام خسته نباشید بفر میید خاانون جوان مردی بل. جناب سربان گفتم مداره که استخدام و سامان افسری بیارید همراه منم یه اداره آگاهی اداره آگاهی چرا؟ دستور جناب سربانهش بفر میتون نه ممنونه. شماره سامانه از به شماره شما بوده گفتم که قرارب بهم همه ازدواش کنه خب خب بعدش با آقا پیشمان دواشون شد بعد فهمیدیم که همه چی رو تو رو در مورد چی؟ در مورد همه چی از مصروع استفاده کردم یعنی میخوای بگی رقم موزایدر رو همینطوری به دادی ها؟ که من کجا میدرستم چی تو سرشه؟ به همینجور رقم موزایدر جوش گفتم مطمئنی فقط همینطوری بوده؟ من این همه سال پیش آقا پیشمان کار کردم وقت خیانت در امانت نکردم آقای پیشمان شریفی الان تو کاماست. من نمیتونه حرف بزنه تا بفهمه که شما راست میگی یا دروغ آقا به خدا من کاری نکردم سامان از بس سوء استفاده کرده. بعد از اینکه یوحئی غیبش زد، با هم دیگه تماس داشتیم؟ نه من با سمرایا که شما دارین آدرسش هم کلاکی گفتید. آدرس دیگه چی؟ ازش داری؟ که داشتم که میرفتم هرچی که لایقشه بهش میگفتم اگه با تماس بگیره بهش چی میگی؟ ازا حرف دیگه باش ندارم ببین خانم ما مسائل شخصی شما کایی نداریم ولی اگه با تماس بگیره حتما باید به ما خبر بدی فهمیدی؟ بله آقای پژمان شریفی حالان تو بیمارستان تو کماست ممکنه زنده بمونه ولی اگه خدای نکرده بمیره موقع قضیه یه جوری دیگه میشه. متوجه ای که. میتونی بریم. درزم. تا وقتی که بهتون اجازه ندادیم حق خروج از تهرانو نداریم. صبح تو حالا چند دفع زنی داده ده جوابشو ده. فکر کنم تو الان آقا مهران بهش گفته باشه و بهتره دیگه باش حرف بزنی نمیتونم بابا سلام پونه جا سلام خوبی چرا بابام رو جواب نمیده من که مردم از نگرم هنوز هیچی معلوم نیست باید سب کنیم معلوم نیست یعنی چی دتاره یه دقیقه گوشی رو به بده بهش من باش حرف بزنم آروم بگیرن نمیشه یعنی الان مردنش اسکن رادیولوژی حالا باشه برای بعد خب پس من مهران رو راهی میکنم بیاد تهران نه خودم که نمیتونم حداقل اون بیاد ببینم چه خبر معلوم نیست بعد نیست ببین دتاره الان بابام اونجا م... بابا آره نه الان اینجا پیش من نیستن رفتن پایین یعنی چی؟ شما مهرانو میفرستن بیاد ته آره خیالت راحت نمیاره دلم مهران میفرستن فردا بیاد ته آخه آقا مهران برای چی میخواد بیاد تو هنوز خودت حال مساعدی نداری ستاره جونتونه بابام جنی... اونجانیه اون جان من به زنگ میزنم باشه خداحافظ چه خبر میگی بچه شوخی نکرده همونطوری خب واج چیکو کنی؟ خدا کن قسم اقا شما دیگه به این خونه خونه چطور؟ نگران. برم خونه چی کار کنم؟ بنو یکم استراحت کنین. اینجا که کاری از دستتون بر نمیاد. منم اینجا هستم. یعنی میشه یه دفعه دیگه پسرم برگرده خونه؟ <تصفيق> فکر نمیکنم. اونی که من دیدم دیگه امیدی به برگشتش نیست. این چه حرفی می‌زنید؟ دکتر میگه که جوونه قلبش سالمه، بدنش سالمه. چرا نه تونه؟ بیم راست بچه بچه‌م دیگه نفس نمی‌کشه. اگه اون رو بذارنش کنار بازم میتونه می‌تونه نفس بکشه؟ ایشالا که میتونه باید بتونه. باید از جوونیش کمک بگیره. شما برین خونه دارواتون هم بخورین اینجور ممکنه خدای نکرم وقت نتونی را برین نقام یه دفتی که ببینمش شما ممکنه قاتل چه پیدا کنه ما پرونده داریم بررسی می کنیم این مورددی پیش بیا از ما خبر کنیم من تلفن هم تو هست می تو یه زنگ دی خیلی. ممکنه. این سنند به دسته دردن کن باعث زحمتی چونه خواهش بکنم بخوا یه از خدا بیخبر زده پسرکمون ناکار کرد الان حال پسرتون چطوره؟ ای اینا که هیچی به آدم نمیگه ولی اون چیزی که من تو آی سیو دیدم نه آرش خوب نیست دعا کنه که موجزه ای رخ بده و کارش خوب شه شکر که الان زنده ناشکری نمی کنه باید از خدا بخوام کمک کنه و چند سالم بخونه خونه گرده مثل صابه ایشال خدا همه مریض رو شفاره خدا مریض شما رو دوست دارم دعا کن که سالم صالمش من همه یه پسر دارم ستون زندگیم پشت و پنامه کسی شد آقا نه خوب میشه. خام کمی درد میکنه ماشین داری؟ نه بیرون میرم میگیرم آقا من رسونه متو گفتم از زندگیت میافتی نه آقا من کارم همین بفرم برو بشین منو میگاری گاهی بودم. آگاهی؟ آگاهی برای چی؟ آقا پژمان بیمارستانه. زدنش است، حالش خوب نیست. خب چه رسو بردن آگاهی؟ شادی من نصف جون میشم. درباره سامان ازم پرسیدن. چی پرسیدن؟ اینکه چه ارتباطی داشتی و اینا. تو چی گفتی؟ نمیتونستم پنهونش کنن گفتم بهم دیگه رو دوست داری اصلا خودشون میدونستن پرنده اسمس سامونو داشتن از کجا میزن که کار سامانه به خاطر دعوای روز قبلش را چه به چیزی پرسیدن دونستن کار سامان بوده الان خبر داری سامان کجاست؟ راستشو بگو اصلا از اون شب تلفنش خاموشه آدرسی هم که داده اصلا علکی بوده قیبش زده به منم گفتن از تهران خارج نشده. یا خدا آخه کرام رقمو به سامان گفتی دادی. همین همینطوری پرسید منم هم بهش گفتم من چه میدرستم چه منظوری داره با نداره سلامت باشین دست اود رف. All right. آقا چه این خونه سرده این مخواری خراب شده بود فشمان درستش کرد اجازت میه نبایی بهش من آمین امین اصاسی میخواد وقت نای کرد باستش نمیاد کار باید کرد یه ساعت دیگر با میشه خونه یخ میشه ولش کن فردا صبح دو مادم میاد میگم یکی رو بیاره بده درست کنم تا فردا صبح که از سرما یخ میزنه؟ یه برای من سرما و گرما هیچ فرقی نداره برودیم گازتون کدوم سمته اگه تو چیزی از این سرت میشه بایده، یه ایم برده. و بایده هم باریم. از اینه بایده شبهنه نتیجه مزایده رسمان اعلام شده اجمان که غیر رسمی خبر داشت اه. ولی حتما مطمئنه که درواره انداخته بیده برنامی جواب نمیده پیچوندتت پیچوندتت یعنی چی من دست سرش بر نمیدارم و میتونمی پیچوند تو فکر کردی الان میاد دو دستی مزرع رو تقدیم کنه خب همه میفهمن یه ریگی به کفشش هست دیگه آقا اصلا بفهمن من خودم رفتم به پیمان گفتم چیکار میخواد بکنه؟ کار نمیتونه شکاعت کنه موزایدر به هم بزنه حرف بزنه بهش میگن و مجا کتکو سند نداری که همین تو هنوز دلت خنک نشده نه هنوز ده. برامیه خاموش میکنی جوابش رو بده بابا نامردیه جوابش بدم چی بگم بش؟ اون باید اعتماد کرده حالا چجوری میخوای تو مزرعه نگرش داری فکر نکنم دیگه باید سویش ماشینو میدی محتی کاره تموم شده که بار آخره اونجا رو میز خودت بردار من دکی شیرات داشتم من نتونستم درستش کنم باید برم جبه ابزار خودمو بیارم ولش کن بابا لازم نیست تو انباریتون پیدا کردم به بخشت بدون اجازه رفتم آره خوبی فردی برش کم اینجا رو گرم نمیکنه خوبه بیابونه و لنگگی به من برم جبه ابزارمو بیارم لازم نیست گفتم که دو مادم فردا صبح میاد نه آخه فهمیدم اشکالش هست چی حالا خدا کنه بتونم درستش کنم برم زود بیا حسابی از کار و زندگی انداختمت خیلی بد ذوقم دادم این چرفی آقا وظیفه است زود در میگردم دبیمارسن تو کما خوره چی bello ایست. این این پسر بوده؟ من دیگه دوست داشتم آرزو میشتم عروسی شب ببینم. چه تو تو بزوشید چرا اون وقت میخواهید با من زندگی کنیم بابا یه اتفاقی که افتاده الان این رو بسا چی فایده راستش داره؟ راستشا بگو سامان کیه شادی؟ منم چه بگو برای چی من خبر ندارم؟ خب شما دنبال چی هست؟ کی با اونجا میگیرم یا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 آه از را رسید روی رعب اله نشاز دکمهای قلب من دون دونشول شدم گفتم این یه مونجزه است خیره شد به آسمان همه ستاره ها دون دون گل شدم بربونی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 مهربونی ایش ای نازنینی ایش آخرین تکیه ایه ای جور ای ای